ريه نور به نام الله که بخشاینده وو بارحمت است این سوری است که ما آن را نازل کردیم و فرزش نمودیم و در آن آیات روشنگری را فرو فرستادیم امید آنکه پند بگیری مرد و زن زناکار را به هر یکصد تا جان بزنید و در دین خدا نسبت به آن دو محبت کاذب شما را فرا نگیرد. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید حتی گروهی از اهل ایمان شاهد این مجازات باشد. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشکه ازدواج نمی کنند و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورند و همه این موارد برای اهل ایمان حرام است کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می کنند، سپس برای اثبات ادعای خود چهار شاهد عادل نمی آورند هشتاد تازیانه بزنید و دیگر هرگز شهادتشان را در هیچ موردی نپذیرید زیرا آنها زشت کردار و بدسیرتند. مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و به صلاح آیند و جبران نمایند زیرا خداوند آمور زنده و باگذشت است. و کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و غیر از خودشان هیچ شاهد دیگری ندارند هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام الله شهادت دهد که از راست گویان است و بار پنجم بگوید نفین خدا بر او باد اگر از درو گویان باشد و اگر زن چهار مرتبه به نام الله شادت داد که مرد از درو گویان است حد از او برداشته می شود و برای بار پنجم بگوید غضب خدا بر او باد اگر مرد از راست گویان باشد تا بار فکر کرده اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمی بود چه میشد شد؟ حالان که خداوند توب پذیر و حکیم است کسانی که تهمت بزرگ را مرتکب شدند گروهی از شما بودند ای کسانی که تهمت خورده اید آن را شر پندارید بلکه خیری برای شماست خدا حقاقیق را روشن می کند هر کدام از آنها که این گناه را مرتکب شده جزا می بیند و آن که اصلی این بحتان بزرگ است گرفتار عذاب بزرگی خواهد شد چرا هنگامی که مردان و زنان و اهل ایمان این تهمت بزرگ را شنیدند خوشبینانه برخورد نکردند و نگفتند که این فقط یک تهمت آشکار است بچرا چهار شاهد عادل برای اثبات ادعای خود نیاوردند بدانید اگر شاهدان عادل را نیاورند همه آنها نزد خدا دروغگو هستند بدانید اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل حالتان نبود به کیفر اتهاماتی که میبستید گرفتار عذابی بزرگ میشدید آنگاه که دهان بدان شایعه پردازی می کردید، آن چرا به زبان می آوردید، هیچ آگاهی از آن نداشتید و آن را کار کوچک و بی اهمیتی می در حالی که نزد خداوند بسیار بزرگ است چرا هنگامی که تهمت را شنیدید نگفتید شایست ما نیست که این گونه تکلم کنید پروردگارا پاک و منزدنی و این یک تهمت بزرگ است خداوند شما را موعظه می کند چنانچه اهل ایمانید هرگز گرد چون این کاری نگردید خداوند آیات روشنگرش را برای شما بیان می کند. زیرا او آگاه و حکیم است کسانی که دوست دارند در اهل ایمان اتعامات زشت شایع شود هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار عذاب دردناکند خداوند نسبت به همه چیز آگاه است در حالی که شما آگاه نیستید اگر فضل و رحمت الهی شامل حالتان نبود چه می حالان که خداوند مهربان و باگذشت است الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. ای همه کسانی که به حقایق ایمان آورده ای پا جای پای شیطان مگذارید هرکس از راه او تبعیت کند بداند که شیطان فقط امر به زشتکاری و منکر میکند اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود هیچ کدام از شما هرگز روی پاکیزگی و تارت را نمیدید اما خدا هر کس را صلاح بداند پاکیزه میگرداند و خدا شنوا و آگاه است آنها که دارای مال و وسعت رزق و روزی هستند نباید قسم بخورند که به خیشاوندان و مساکین و مهاجران راه خدا چیزی نمی دهید بلکه باید ببخشند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید خدا نیز از گناهان شما درگذرد بدانید که خداوند آمرزنده و با گذشت است کسانی که زنان پاک دامن و مؤمنه و بیخبر از گناه را تهمت زنا میزنند هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار نفرینند و عذابی بزرگ برایشان محیزد روزی که زبان و دستها و پاهایشان بر ضد آنها نسبت به عمل کردشان شهادت می دهند، در آن روز خداوند کیفر دستاوردشان را به تمامی خواهد داد و خواهند فهمید که خداوند حق آشکار است زنان ناپاک برای مردان ناپاکند و مردان ناپاک برای زنان ناپاک زنان پاک برای مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاک آنها از اتهاماتی که دربارهشان می‌گویند بری هستند و آمرزش الهی بر نظم ارزشمند برای آنهاست ای اهل ایمان به غیر از خانهای خودتان به خانه‌ای وارد نشوید مگر آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید این کار برای شما خیر و برکت است امید آنکه پند بگیرید و اگر کسی در آن خانه نبود و کسی را نیافتید هرگز وارد نشوید تا زمانی که اجازه داده شود. و اگر اهل خانه‌ای به شما گفتند برگردید پس برگردید. این کار برای حفظ شرف شما بهتر است. بدانید که خداوند به عمل کردتان آگاه است. اما گناهی بر شما نیست اگر به خانههای غیر مسکونی که متاعی در آن دارید وارد شوید. بدانید هر چرا آشکار انجام دهید و یا کتمانش کنید خدا از آن آگاه است به مردان اهل ایمان بگو که چشمان خود را از نگاه بد و وسوسه انگیز فرو گیرند و پاک دامنی خود را حفظ کنند زیرا این کار برای حفظ شرفشان بهتر است و بدانند که خداوند از عمل کردشان با خبر است و به زنان اهل ایمان نیز بگو که چشمان خود را از نگاه بد و وصفص انگیز فرو گیرند و پاک دامنی خود را حفظ نمایند و زیبایی های خود را جز آن مقدار که قهرن پیداست آشکار نکنند و دنباله دستمال سر خود را بر گریبان بیندازند و زینت های خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان و یا پسران خواهرانشان و یا زنان همکیششان یا بندگانشان و یا قدمت گزارانشان که تمایلی به جنس زن ندارند و یا کودکانی که از وضعیت جنسی زنان بیخبرند همچنین زنان نباید چنان پای بر زمین بکوبند که زینت ها با زیبایی هایی که مخفی کرده دانسته شوند به ای اهل ایمان همگی به سوی خداوند بزرگ توبه کنید امید آنکه رستگار شوید مردان و زنان مجرد و همچنین غلامان و کنیزان شایسته و درستکار خود را همسر دهید و اگر فقیر باشند خداوند از فضل خویش آنها را غنی میسازد زیرا خداوند گشاگش دهنده و آگاه است اما کسانی که توانایی ازدواج ندارند عفت و پاک دامنی پیشه کنند تا اینکه خداوند بزرگ از فضل خیش آنها را غنی سازد و از بردگان شما آنها که طالب آزادیشان هستند اگر در آنها خیری یافتید و می توانند خود را اداره کنند با درخواستشان موافقت نمایید و از انبالی که خدا در اختیار شما گذاشته به آنها چیزی بدهید و کنیزانتان را به خاطر مال دنیا به خود فروشی وادار مکنید اگر میخواهند پاک بمانند و هر کس آنها را وادار به این کار کند خداوند نسبت به آن زمان که مجبور شدند بخشنده و باگذشت است حقیقتا ما آیاتی روشنگر و داستانهایی از گذشتگان شما و موعزهی برای گزاران حریم الهی نازل کرده ایم. الله نور السماوات والأرض مثل نورهی کمشکتیم فيها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجة كأنها كوكب تري يوغض من شجرة مباركة زيتونة لا شرخية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمفال للناس والله بكل شيء عليم الله نور آس منها بالزمينة. مسال نور او چون چراغدان است که در آن چراغی است که درون حبابی قرار گرفته است. حبابی که از فرت درخشندگی همانند ستاره ای نور است. این چراغ به واسطه روغن درخت با زیتونی که نشربی است و نه غربی روشن می شود. روغنی چنان شفاف که گویی خود روشنی دهنده است هرچند آتشی به آن نرسد. نور غرق در نور بدانید که خداوند به واسطه این نور هر را صلاح بداند هدایت می کند و برای آگاهی مردم مسئله میآورد و خداوند بر هر چیزی آگاه است. آن نور در خانههایی است که خداوند اجازه فرموده تا تکریمش کنند و نام او را در آن یاد کنند، و هر صبح و شام در آن مکانها تسبیح خداوند را بگوگند مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات غافل نمی کند و همواره از روزی که قلبها و دیدگان در آن دگرگون شود بیمناکند تا خداوند بزرگ بهتر و افزون تر از عمل کردشان عطا فرماید بلکه از فضل و کرمش بر آن بیافزاید. بدانید خداوند هر که را صلاح بداند بی هیچ حسابی روزی میدهد. و کسانی که به حقایق کافر شدند عمل کردشان چون سرابی در بیابان است تشنه آن را آبی زلال تصور می کند اما هنگامی که به آن می رسد چیزی نمی بینند جز خدایی که در برابرش است و او هم جزایش را به تمام میدهد بدانید که خداوند سریعا حساب را پرداخت می یا عمل همانند تاریکی های اعماق دریاست که موجهای پی در پی آن را پوشانده است و بر فراز آن لایه های متعدد عبر های تاریک است به طوری که اگر کسی بخواهد دست خود را خارج کند هرگز آن را نمی بیند آری کسی که خدا نوری برای او قرار نداده هیچ نوری برایش وجود ندارد آیا نمی بینی هر که در آسمانها و زمین وجود دارد و حتی پرندگان در حال پرواز تسبیح خداوند بزرگ را می گویند. همه نسبت به نماز و تسبیح او آشنا هستند و خداوند از عمل آگاه است. سبحان الله سبحان الله سبحان و زمین از آن خداست و سرنوشت همه حضور به نزد اوست. آیا نمی‌بینی که خداوند ابرهایی را به آرامی حرکت می و به هم میرساند و توده ای ابر متراکم تشکیلی می دهد. آنگاه باران را میبینی بینی که از میان آن میبارد بنیز و نیز از آسمان و کوهای سر به فلک کشیده در آن تگرگ میفرستد تا بر هر کس سلاح بداند ببارد و از هر کس سلاح بداند باز دارد حالان که روشنی برقش نزدیک است قدرت دیدش را از بین ببرد خداوند شب و روز را به گردش در می آورد و در این عبرتی برای صاحب نظران است این خداست که هر ای را از آب آفرید و اکنون بعضی از آنها بر شکم خود می خزند و بعضی روی دو پای خود راه می روند و برخی بر چهار پا خداوند آنچه چه به قاحت می کند زیرا بر هر کاری تواناست حقیقتا ما آیاتی روشنگر نازل کرده و خداوند بزرگ هر که را صلاح بداند به راه راست و درست هدایت می کند می گویند ما به خدا و پیامبرش ایمان آورده و مطیع شده ایم اما بعد از این اقرار گروهی از آنها به حقیقت پشت می کند. بدانید که آنها اهل ایمان نیستند و اگر به سوی خدا و پیانبرش دعوت شوند تا میانشان داوری کند گروه از آنها را میبینی که روی برمیگردانند و اگر حق با آنها باشد داوری به نفع آنها شود سراپا تسلیم او میشود آیا در غلبهایشان مراکز فهم و ادراکشان بیماری است یا اینکه همواره در شک و تردیدند؟ و شاید از خدا و پیامبرش میترسند، مبادا به با آنها ظلم می کنند. بدانید خود اینان ظالمند اما جواب اهل ایمان وقتی آنها را به سوی خدا و پیامبرش دعوت کنند تا میانشان حکم کنند، این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم بیشک اینان رهستگارند هرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و خدا ترس باشد و حرمت عوامر او را نگاه دارد بیشک اینان پیروز و رستگارند وسمها سخت و بزرگی به خدا میخورند که اگر به آنها دستور دهی خانه و کارشانه را ترک کنند و سراپا تسلیم شوند بگو لازم نیست قسم بخورید. تاعتی خالصانه داشته باشید زیرا خداوند، از اعمال آگاه است بگو از خدا و پیامبر اطاعت کنید چنانچه از حقیقت روی برگردانید بدانید که پیامبر مسئول اعمال خیش است و شما نیز مسئول اعمال خودتان هستید اگر او را اطاعت کنید به راه نجات آرامش هدایت می‌یابید و بدانید که وظیفه پیامبر فقط ابلاغ روشن و شفاف است خداوند به کسانی از شما که به حقایق ایمان آورده و عملکردی شایسته دارند وعده داده است که آنها را در روی زمین جانشین دیگران خواهد کرد. همچنان که کسان دیگر را قبل از آنها جانشین کرده بود. و خدا دین و آیینی را که برای آنها پسندیده است، پاورجا قرار میدهد. و ترس و وحشتشان را به امنیت و آرامش بدن خواهد کرد تا فقط مرا بپرستند و چیزی را شریک من قرار ندهند و اگر کسی بعد از آن به حقایق کافر شود بدون شک زشت کردار و بدسیرت است و اقیم الصلاة و آت الزکاة و الرسول لعلكم ترحمون و نماز را به جا آورید و زکات را پرداخت نمایید و از پیامبر اطاعت کنید امید آنکه مشمول رحمت شوید ما که کافران راه گریزی در زمین خواهند داشت آنها جایگاهشان آتش است و چه بد سرنوشتی است آتش ای اهل ایمان خدمتگزاران شما و نیز آنان که هنوز به بلوغ نرسیدند، در سه نوبت برای وارد شدن بر شما اجازه بگیرند. یکی، پیش از نماز صبح، دیگری در نیم روز هنگامی که لباس بیرون از خانه را از تن بیرون می آورید، و سوم بعد از نماز اشا. اما غیر از این سه وقت که وقتهای خصوصی شماست، باکی بر شما و آنها نیست اگر بدون اجازه بر شما وارد شوند نسبت به یک دیگر توجه داشته باشید خدمت یک دیگر کنید بدانید که خداوند آیاتش را اینچونین برای شما بیان می کند و خدا آگاه و حکیم است. و انگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسیدند برای ورود بر شما اجازه بگیرند همانطور که کسان قبل از ایشان اجازه می گرفتند این چونین خداوند آیات از را برای شما بیان می کند. بدانید که خدا آگاه و حکیم است. و زنان پیر و از کار افتاده ای که امیدی به ازدواجشان نیست بر آنها گناهی نیست اگر هجابشان را بردارند به شرط آنکه جلو آرایی نکنند اما اگر خود را بپوشانند برایشان بهتر است. بدانید که خدا شنوا و آگاه است. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست و نیز بر شما گناهی نیست اگر از خانه هایتان و یا خانه پدرانتان یا خانه مادرانتان یا خانه برادرانتان یا خانه خواهرانتان یا خانه اموهایتان یا خانه عمه هایتان یا خانه داییهایتان یا خانه خالههایتان هایتان یا خانه که کلید آن نزد شماست به یا خانه دوستانتان، چیزی بخورید چه همه با هم بخورید و چه تک تک و هنگامی که خواستید به ای داخل شوید به یکدیگر سلام کنید این تهیتی با برکت و پاکیزه از سوی خداست اینچنین خداوند آیاتش را بر شما بیان می‌کند امید آنکه تعقل نمایید اهل ایمان کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند و چون در کاری گروهی با پیامبر شرکت نماگند نباید بدون اجازه او محل خدمت را ترک کنند و کسانی که از تو اجازه می همان کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند ای پیامبر، اگر برای انجام پاره ای از کارهای شخصی چون از تو رخصت بخواهند و هر کدام از آنها که سلام میدانی رخصت ده و برایشان از خداوند آمرزش طلب کن زیرا خداوند آمرزنده و باگذشت است ندا کردن پیامبر را در میان خودتان همچون ندا کردن بعضی از شما از بعضی دیگر تصور نکنید خداوند از آنهایی که پشت سر دیگران پنهان می شوند تا یکی پس از دیگری فرار کنند به خوبی آگاه است. کسانی که از دستور پیانبر تخلف می کنند باید از این بترسند که مبادا ای و یا عذاب دردناکی گرفتارشان کند آگاه باشید که هرچه در آسمان ها و زمین است، از آن خداست موقعیت شما را میداند و آن روز که همه به سوی او باز می گردند بیشک از عمل آگاهشان خواهد کرد و خداوند بزرگ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 صدق الله العلي گفت خداوند بلند مرتبه و عزیم خاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.